حکایت گویند خاجه ای را بنده نادرالحسن بود و با وی به سبیل مبدت و دیانت نظری داشت. با یکی از دوستان گفت دریق این بنده با و شمایلی که دارد اگر زبان درازی و ادبی نکردی. گفته برادر چون اقرار دوستی کردی توقع خدمت مدار. که چون عاشق و معشوقی در میان آمد مالک و مملوکی برخواست خاجه با بنده پری رخسار چون درآمد به بازی و خنده نه عجب کو چو خاجه حکم کند بین کشد بار ناز چون بنده